فصل دیشب برای اولین بار خواب یکی از غمگیز ترین دوره های زندگیم را دیدم. هفده سالم که بود یک روز بعد از ظهر پدرم برای آنکه از دستم راحت شود به پلیس امداد زنگ زد. ماشین پلیس جلو ساختمان انتظارم را میکشید. به کلانتر محله تحویلم داد و گفت ولگرد هستم. تصمیم گرفته بودم این دوره را فراموش کنم اما توی خواب دیشبم نکته جزئی مغفول شده‌ای یادم آمد و بعد از چهل سال مثل بمبی عمل نکرده تکانم داد خواب دیدم تایی کلانتری روی نیمکتی نشستم و بدون آنکه بدانم میخواهند با من چه کار کنند انتظار میکشم. گهگاه چرت نصف و نیمه‌ای میزنم از نیمه شب به بعد مدام صدای ماشین و به هم خوردن درها به گوشم می رسد بازرسها، تعدادی آدم بی ربط به هم را حل می دهند توی سالن. تعدادی خوش لباس بودند و بقیه شبیه بی خانمانها یک دستگیری جمعی آنها مشخصاتشان را می گویند و یکی یکی توی اتاقی که فقط درش را می بینم که چهار تاق باز مانده ناپدید می شوند. آخرین کسی که خودش را به معمور ماشین نویس معرفی میکند، زنی جوان با موهای بلوتی و مانتو پوست است مامور پلیس چند بار اسمش را اشتباه می نویسد و او با می حوصلگی تکرار می کند شکلن با سرژان قبل از آنکه که وارد اتاق کناری شود نگاهمان به هم میافتد